حافظزن و الرحمن رحمن ولا حولا ولا قووت إله بالله العلي العظيم اسم الله رحمن رحیم والله و یه کرده و جتب ساعته فی كل سااع ولییان و حافظزن و و تا دوست کنه حواظ که تو حواظ مت ها توید منور شدن جلسمون و قلوب هزار و انوار هدایت الله ذات بقیت الله لعظمت جلاله تعالی و شریف و ترجیل در فرج حضرتشون به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ادی محضر آقا امام امیر میران مؤمنین علی ابن ابی طالب و بیبی بی دو عالم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه به نیابت از اراغون علی ابن موسی الرضا صلوات خلو شرم الله صلرا از همه دوستان و میران مؤمنین برآورده الله امسال سالی داشته باشیم مرزی رضای حضرت زندگی بکنیم محضر مادر بزرگوار امام زمان حضرت نرجس خاتون صلوات الله سلام علیه و صلواتی خد فهمید الله محمد محمد محمد الحمدلله خدا رو شاکرین منت کذاشتن سرمون امشب مجدد اجازه دادن دوره جمع بشیم گرد فضائل و فضایل مناغه اهل بیت که بارها عرض کردیم به فرمونده ی رسول الله سید اعمال و حفظل اعمال قدر بدونیم حقیقتا تا چشمون وانشه تا نبینیم قدر نمیدونیم این جلسات قدر این جلساتو یکی مثل حبیب ابن مظاهر میدونه که فدای امام حسین شد تو کربلا به نقلی در کودکی هم یک مرتبه فدای امام حسین شد جایگاهی که تو شهده کربلا داره تو شهده کربلا هم سر آمده چون یکی از نشونه هاش جایگاه قبرشه همه شهده های کربلا پایین پای سید و دفن ها اما حبیب ابن منظاهر بالا سر امام حسین دفنه خیلی عجیبه این چه ویژگی داره حبیب حالا چه ماملهای با امام حسین کرده خودش میدونه اما یک مثل حبیب ابن مظاهر در اون رویا یا یا حالا مکاشفه ای که برای اون عالم اتفاق افتاده بود تو حرفهایی که زده بودن گفت حبیب تو که دیگه یه همچین درجه و مقامی و یا همچین غربی پیش امام حسین داری دیگه حاجتی دیا وسط مونده حبیب ابن مظاهر با این درجات مقام برمیگرده میگاره دلم میخواد بیام تو جلسات امام حسین شرکت کنم برای عباد الله گریه کنم نمیفهمیم قدر اینا رو خیلی خیلی خیلی منت سرمون گذاشته حضرت زهرا سلام الله علیها که اجازه داده به همین راحتی بیایم بشینیم دوستان امیرالمومنین. آدم ابوالبشر بشر سال گریه کرد تو بهش اجازه دادن چند قدر عشق و امام حسین پریزه ابراهیم خیل و رحمان هیجده امتحان سخت الهی رو پس داد دیگه با دو آتش و فلان بعد که پسرش رو زبه کرد که زبه کردست مایل و چاقو نبوری تازه اون موقع اجازه دادن روزه ما حسین رو بشنبه و گریه کنه و زبا جناب زکریه تو سن پیری بعد اون همه مشقات و سختی تازه بعد عهدی که باهاش گرفتن که گفتن عهد میبندی که به این ابتلا مبتلات بکنیم گفت میبندم عهد بس که یه پسری خدا بهش بده به نامی یحیا سلام الله علی شبیه به امام حسین شبیه به امام حسین کشته بشه و این درد و این ابتلاعه روزکری ها بکشه بعد خدا و سش روزه امام حسین خود مفت و مسلم به لطف از زهرا سلام الله علیه به لطف امام زمانمون یعنی به خاطر اینکه ما اماممون رو نمیبینیم چون گفتن دوستان ما در آخر زمان ما رو نمیبینن و ما رو دوست دارن این خیلی امتیاز بالایی فکرم تو همین جلسه ارز کردن ختمه تون که پیغمبر میفهمید اینا برادران منن. سلمان و مقداد و اینها نشستن اونجا یعنی آقا ما بس چی میفهمید شما انصار و یاران منید برادران من در آخر زمان میاد منو و رو ندیدن و ماها رو دوستان از ما اطاعت میکنن برادر رسول الله و خب برادران رسول الله یه همچین امتیازی دادن این نعمتی دادن، این نعمت رو قدر بتونیم به من و شمام هیچ کس امضا نداده که دستمونو تا آخر در این خونه بگیرن بگن بیشونیم اینجا یه دفعه میبینی به یه حدی که میرسه از در خونه مام حسین دورمون میکنن همون جوری که به همین راحتی بقلمون کردن یه دفعه میده از در خونه مام حسین رده دورمون کردن بگه تو کربلا نبودن دو هزار نفر با عربا به اون امام حسین اومدن کربلا خورد خورد شب آش... روز اول شبه شب شبه آشوره حتی روز عاشورا حتی بعضیا با امام حسین تو جنگ شرکت کردن اما شهید نشودند. میمون حسین قبولشون نکرد. اینجوری هم پس نیست. او ابا عبدالله او کارش پدریه او مهربان ترین فرد به من و شما در عالم امکان نه من و شما همه بندگان خدا این قده عمر رحمت الله الواسع است که به شمر ملعون که رو سینه امام حسین نشسته میگه شمر از خون من بگذر من دارم شهید میشم من دارم میمیرم این قد زخم خوردم از خون من بگذر نمیگه سن تو زیاد نکن این ماها باشیم بابا بیشتر از این خودت تاثیر نکن اما اون رحمت الله الواسع است میگه شمر از خون من بگذر من شفاعتتو میکنم بغل رسول الله بشینی این عبا عبدالله میخواد یه کاری بکنه یه جوری پدری بکنه که اگر شمر روز قیامت بلند شد نتونه بگه یا عبا عبدالله تو پدر بندگان خدا بودی تو فقط واسه حبیب پدر بودی واسه من پدری نکردی اما موسیقی حق پدری برای همه تموم کرده حتی شه. ببین نمیخواد امام حسین یاری بکنه نمیخواد تو کاب امام حسین شهید بشه نه میخواد سر امام حسینو نبره نه اینکه تاز امام زنده بمونه یقینا خود امام میگه من شهید میشم تو این کارو نکن از این کار دست بکش من امام حسین شفاعت رو میکنم بقدر رسول الله اینی اما از اون طرف هست عالمیست در قوم اسم این برم شاید به رحمت خدا رفته قبرش همین وارد حرم از محصوم سلام الله علیه ها میشین از باب ساعت این دستراز قبرش اونجاست ببین جایگاه قبر ایشون مسحه علمیزانه تفسیر علمیزان تفسیر که علامه تبا تبایی نوشه از تفسیرهای عجیب قرآنه که الان خیلی از ما طلبه ها روش روخونیش نمیتونیم بکنیم اون ق این آقای عالم که گفتم ایشون مسحه علمیزان بوده یعنی یه درجه علمی اینجوری داشته که وقتی علامه تبا طبع تبایی علمیزان رو می نوشتن می ایشون اصلاحش کنن همچین همشین مقام علمی درجه علمی ببین یه قبرم که جایگاش مشخص تو حرم حضرت معصوم تو حرم حضرت زهرا و سلام الله علیه دیگه دونیم اینه با پدر دوست ما هایری توسید اسد محمود می نشسته ایشونو ایشون یه ایشون بزرگواری بود 365 شب سال تو حسینیه روزه بود و اطعام می‌کرد که به رحمت خدا رفت وقتی هم به رحمت خدا رفت شب اول قم آیت الله ربانی خواب ایشون رو دیده بود هم نش نکرده بودن ایشون هایری توسید گفت چی کار می‌کنی سید اینجا گفت امام حسین من اینجا مسئول ارزاغ هییتا کرده یه مقام اینجوری داشتیشون وارها من خودم دیده بودم اسم ما حسین میواد همه محاسن سفیدش خیس میشد خیلی آدم محل حال و راه رفته بود کاینا ایشون رو تعریف کرد واسه ما گفت که خیلی واسه اینکه خیلی قره نشیم تو این دستگاه گفت که یه هم ایشون رفیق اومنده خدایی بود که قصه مراجعه ایشونه این عالم مصحح علمیزان یه خوابی میبینه که واسه خائلی توسط تعریف میکنه خواب میبینه امام حسین کمربنده ایشون گرفته تو قتلگاه خودش بلندش کرده یعنی چی؟ یعنی نشون من هر کی میخواد به من برسه بیاد متوسطل بشه به ایشون نشون راه من امام حسین قیلی مقام عجیب یه همچین خوابی میبینه خلاص واسه ایشون تعریف میکنه اواخر عمرش آی هاییت از اینشون میپرسه که آقا چه خبر یه خوابی دیدیم موقع بسنان ده سال پیش و اینها چی شد و تصدیراتش و نتایجش چی شد اینا اینها گفته یه دست به دلم نزار. یه شب خواب دیدم امام حسین گفت همه منطقه که به دادیم ازت گرفتیم گفتم آخه واسه چی؟ گفت فلان شب رفته بودی فلان جا منبر بری یایت فلان نوکر امام حسین فلان نوکر ما اومد بهت یه چیزی گفت بهش توهین کردی حالا یا هر حرفی زدی دلش شکست دل و نوکر رو شکونی همه رو ازت گرفتی ببین یه وقت من میرم تو مسجدیم بالا میشینم واسه عام مردم حرف میزنم میگم امام حسین همهش خوبی و مهربونیه وقتش میام این پایین تو حسینیه امام حسین میشینم تو جمع نوکرای امام حسین میشینم میگم شما که خودتون رو جدا کردین از مردم و به اسم حسینچی و هیئتی و نوکرهای ارباب مطرحید امام حسین سر شما قیوره و همون اندازهی رو تک تکتون متعصبه و رو غیرت داره و ازتون تو همه شعون زندگی حمایت میکنه چون خادم و نوکرشید و یار خاصشید از همون طرفم هم روتون خیلی حساسه. ازتون قبول نمیکنه یه سری کارا رو. یه تو رو به اسم من میشناسن. آبروی تو میشه آبروی من. تو یه اشتباهی بکنی میگن اینا رو ببین، هی همین همینا هم که حسین حسین میگاد شب تا صبح. دیدین میگن تو جامعه. وقتی امام حسین آبروش میشه شما قمر بنی هاشم رو آبروی امام حسین قیوره. یه جا یهودست هست با خطا کنیم حسابی سی. یه وقت نه آقا آمه مردمی مثل همه اینا که میان روز آشورا نظری میگن یه جلسهی میگیرن یه روزهی میرن یه دهه محرهی میان اونا فرق میکنه بارهام گفتم عالم سر سفره امام حسینه نه من و شما نه شیعه همه عالم حتی اون وهابیه آقا وهابی حتی اون وحابیه اصلا کسی تو بگه غیر از سفره امام حسین تو عالم سفره ای پهنه اون سفره که خدا عام پن کرده ناحی رحمتش پن کرده همین غذا و آب و آفتاب و اینا رحمت خداست کافر بت همه آب میخورن همه غذا میخورن همه روزی میخورن این راهی رحمت خداست و رسول الله فرمودن حسین من رحمت الله الواس است واسطه رحمت خود از همه سر صفر امام حسین دیدیم دیالا دیالاگ اینجا گفتیم اما یه وقته شما میایید نه میایی خدمت عبا به هر بهونه دور امام حسین جمعیش آقا فاطمی از حسین ما رمزون احیا میگیریم حسین نمیدونم خدمتون که آرزستم سته صادقیه میگیریم حسین محرم محرم و سفر حسین محسنیه حسین نه که ما اعتراض کرده باشیم میگن آقا بدعت گذاشید نه به ما ربطی نداره همین مفاتیح جنان رو کنید هر مناسبتی نیش نیمه شعبان شب تولد امام زمان زیارت مخصوص هوا عبدالله شب جمعه زیارت عبا عبدالله عید فطر زیارت عبا عبدالله عید قربان زیارت مخصوص حو عبدالله شب قدر شب شهادت امیرالمؤمنین زیارت عبادل هر مناسبتی به هر بهونه‌ای خدا همه رو حواسار جمعه کربلا میکنه این که کار حرف حرف خدا حرف ما نیست اما اگر امام حسین یعنی حضرت زهر سلام الله علیه خریدتتون اولدتتون تو این دستگاه نشستیم یه مننت اینجوری رو سرمون گذاشته که ماهارو شبیه تر به امام زمان کرده که او صبح و شام گریه میکنه بر عبا عبدالله الحسین فقط یه بچه اشتراکم میتونی داشته باشیم دیگه ولی اگه بحث نماز باشه نماز ما گجا نماز امام زمان گجا روزه ما گجا روزه امام زمان گجا حج ما گجا حج و ابن الحسن گجا قابل قیاس نیست یه چیزه تو عالم که خدا همه افتراقاشو برداشته گفته تو این قصه ریاش خودنماییش جلوه گریش واسه غیرش اخلاصش تکبرش همه رو با هم میخرم اونم سر امام حسین میگه عدای گریه در بیاری تو کدوم مناسک ما عدا داریم خودت نماز بخونی و حالا ادشو فلان در بیارم تا اون بعداً که باید نیت بخونی وضو بگیری اول تهارت کامل لباس تهارت داشته باشه جا تهارت داشته باشه وضو بگیری وضو بعد نیت صحیح بکنی بعد وارد نماز بشی بعد تو نماز تازه میگه نمازا که خوندی که باید بخونی واجب بخونی بعد اگر هفت مرحله ریا داره هفت مرحله ریا که امیران میفهمه مثل راه رفتن مرچه سیاه رو سنگ سیاه تو شب زلماته اونم رد بکنی هفت مرحله و هفت مرحله اخلاص را باید رد بکنی یه هفت مرحله اخلاص رد بکنی تازه میگه سه آسمان چهارم آسمان چهارم باید خلص مخصوص خدا باشه هیچ غیری توش نباشه مناسک ظاهریش و باتش نماز قبوله. این درکتش روزه. حج، زکات، خمس، امر به معروف نه همه یه فروه اما امام حسین جان خونه این حرف حرف ما نیست حرف حجت ابن الحسن به سید بحرال علوم سید بحرال علوم سؤال میکنه یبنه رسول الله مگه میشه طرف یه خطر عشق بریزده خدا همه یه گناهاشو ببخشه مگه میشه یه نفر بگه الله که یا ابا عبدالله روایت و نفس المهمومه خدا سواب زیارت خودش رو بهش بده صد هزار گناهش رو ببخشه صد هزار حسنه بهش بده صد هزار رتبت تو بهش بالا ببره رو یه دونه رتبت تو بهش جا به جا بشی پیرت در میاده ماها چون خیلی آسون به دست آوردیم نمیفهمیم برید تو مناسک ابراهیمی تو مناسک حج ابراهیم ببین این اعمال سختی که حجاج انجام میدن همشو که با هم انجام میدن یه رتبت تو بهش بیان بالا اگه قبول بشی اما یه صلی اللہ علیه آه و الله سنتش این آموززه تهرانی که نماینده مجلس تعریفگینش شو پوشید روی بحثت بود ایشون از خواص بود میگفت که اصفهان که بودیم حاجی رحیم ارباب بالا منبر فرمودن که هر کی شب خاص بخوابه قبل اینکه بخوابه دست به رخت خواب بشینه حالا وضو هم نداشت نداشت که خودشو اذیت کنه همینجا بشینه بگه صلی الله علیه عبدالله الله علیه یا ابو الله هدیه کنه به همه اموات مؤمنین و گفت ما این پایین نشسته بودیم تو ذهنمو گفتیم او اموات مؤمنین و مومن. از تا آدم مؤمن و مومنات دیگه تا الان چند میلیارد مومین و مومنات این سه سلام به کی چی میرسه می گفت صبح که اومدیم سر از یکی از بچه‌ها گفت قبل کلاس منیت بگم واجوی من هر‌وقت نشسته ایشون نمی‌شد می, می آقا من دیشب و آدم بخوابم این حرف واجق اومد تو ذهنم بعد گفتم آقای. به کی میرسه حالا گفتم ولش ما میگیم دیم گفت سه مرتبه گفتم صلی الله علیه یا عبدالله خدی گفت تو عالم رؤیا دیدم تخت پولات اصفهانم گفتم قیامت شده دیدم فوج فوج ملائک طبقه نور رو دارن میارن تو هر قبری چندین طبقه نور خالی میکنن گفتم قیامت دیگه ولدم چه خبره صحرای محشر قیامت گفتند ابا این نتیجه سلام تو به ارباب دوام حسین داریم هدیه بینی واسه و این فقط واسه امام حسین. اون وقت امام زمان به سید بحرالعلوم میگه سید بحرالعلوم چون امام حسین هرچه داشت در راه خدا داد خدا اگر هرچه دارد در راه حسین بده تازه یَر میشن. این حرف حجت ابن الحسن به سید بحرالعلوم. امام حسین از هیچ مزایقه نکرد. حتی حضرت رب ارباب تو قصه حضرت علی اصغر گفت یا ابا عبدالله عهد رو از تو برداشتیم. عهد رو برداشتیم. امام حسین وقت برگشت یه ای گفت ببین همه مقاتل جمعه‌ها نوشتن اما حواس من تو جمع نیست به یه نکته امام زمانمون مد به ما بگن هر چی داریم از امام زمان. وقتی لوح آورد جبرئیل گفت یا ابا عبدالله حالا به زعم حرف من بس دیگه عالمو به هم ریختی اون علی اکبرت اون قاسمت اون قمر بنی هاشمت بس دیگه انقدر کار بالا گرفت حالا من نمیخوام برم تو اونجا بمونه حالا اما سر قصه قمر بنی هاشم یه کار به یه جایی رسید سر مصیبت قمر بنی هاشم که جبرئیل نازل شد گفت حسین خدا گفت تو پیروز جنگ بشو عهد درست سر جاشه یعنی دیگه نیاز نیست خودش شهید بشی زن و بچت به اسارت برند چه مصیبتی بود مصیبت قمره و نیاشم نمیدونم که خدا گفت بسه دیگه اما سرنج قصه جناب علی اسقر له لوح رو لوه عهد ورد پایین گفت یا عبدالله خدا لوح احد برداش نه بر علی اسقر رو میدون سید یه جمله یه جمعه گفت عربابمون حسین فرمود سه هفتاد بار کشته بشم باز زنده بشم در راه تو میخوام فدا بشم دوستان دسته یه دو شهده یکی مثل مرعشی نجفی، یکی مثل اللامه امینی اینا که سیمشون وصله به حجت ابن الحسنن گفت امام حسین دید قصه حضرت علی از اتفاقی میفته گفت هفتاد بارم کشته بشم همینه گفت داغ علی اصقر مساوی با همون هفتاد بار کشته شدن و زنده شدن بود حسین هفتاد بار زنده شد امور. چون ببین علیه اکبر شهید شد حالا به روایت از ام لیلا بود یا نبود ولی جنازه رو بردن حضرت قاسم شهید شد که حضرت نجمه بود تفلان زینب که شهید شدن حضرت زینب که بود مادران و هدایج کربلا بودن اما مر... ملعون حرمله میگه یه جا من حرمله دلم به حال حسین سوخت زدم علی اصغر و دلم نسوخت اما دیدم حسین رجل ال المحیم رجل ال حرم معركه هی میره سمت خیمه ها هی برمیگرده دیدم متحیر شده امام حسین <تصفيق> هفتاد بار حسین کشته شد تو سزدری از خرق. حالا که با این درکار. یه چیزی داشتم میگفتم دارشم میگفتم ببینید دوستان سه یه دو, ی دو قدر بتونید مواده یه روزی به من و شما بگن بعد هفتاد سال نوکری در خونه امام حسین بگن نه تو قدر نعمت ندونستی ارباب کریمه اما رو نوکراش هم قیوره همون جوری که از اون طرف همه مدل بغلتون میکنه. بذار حجت بهتون تموم کنم فرمودن دوستانمون رو حتی ببین از سیزایل فرمودن محبان امیر خودم میان مثل بو کردن گلی که گل بو کنن جانشونو رو ازشون میگیرن به همین راحتی اما اربابتون امام حسین فرموده دوستان خودم رو خودم میام جانشون رو میگیرم یعنی به حضرت عزرایل هم اجازه نمیدم خودم میام خودم سوال جواب قبرشون رو میدم یعنی نکیرمونج با خودم بغلشون میکنم میبرمشون یعنی امام حسین خیلی حواتون رو داره اینو بدونید اما از اون طرف دواب این همه خوبی و مواظب باش دل امام حسین نشکنیه ها حرفی که امام حسین به, به شیخ مفید زدن نباش نشه ها امام زمان به شیخ مفید فرمودند ما همه حواسمون به شماست گناه میکنید استغفار میکنید مباد بلا سرتون بیاد مریض میشید ما مریض میشیم مقروض میشید ما مقروض ما همه حواستمون بهتون هست فقط شیخ مفید به دوستان ما بگو دل ما را اینقدر نشکنن مگه میشه یه محبه امام حسین کسی که داد میزنه حسین حسین میگه تو عالم فخرش امام حسینه تو عالم هر جا به روش بره آقا بگه من هیچ کارم اما امام حسین دوست دارم ما غیر از این چیزی نداریم دوستان به قرآن مجید هیچ جا هیچ خریداری ما نداریم من رفتم دیدم بزرگتراتون رفتن دیدن جز در خونه امام حسین هیچ جا ما آبرو نداریم یعنی آبرو جایی دیگه نیست غیر در خونه امام حسین خیلی دوستمون داشته از زهر و سلام الله علیه ولی دل امام حسینم هم نشکنیم دیگه دوست است امام حسین مثلا بیاد دل دوست امام رو بشکنه معاذ الله بیاد ناوزا مله آبروی دوست امام رو ببره غیبت دوست امام رو بکنه معاذ الله مال حرام بخوره ربا بخوره ناوزم بالله ناوزم بالله کاری که یزید میکرد دوست امام حسین بیاد انجام بده مثلا من برای امام حسین این حرف رو زد صعب بیاد تابو زم بالله اون رو همه روزه ما اینه که تو شام به سر اربابمون جسارت کردن با اون بعد بیاد دوست ما مبتلا به اون متا باشه ما عاذ چیکار داریم میکنیم با دل امام زمان چیکار داریم میکنیم با دل حضرت زهرا خیلی حواسنونجاست همه این حرفا را زدم مقدمه یه حرف من برای دو شب قبل حواستتون به دل دوستان امام حسین باشه. پدر مادرتون دوست امام حسین خانوادت، خواهرت، برادرت، امه، خالده، دایی، اقوام همه همه اینا که تو خیابون میبینی دوست امام حسین سی نبوی کم و زیادش حالا همه قرار نیست مثل منو تو باشن همین که میگن یا همین که بچهش توی فرودگاه مشهد بودیم یه خانه بود خیلی بعد هجاب بود خیلی هر مثلا از اینا که میبینیم هزار تحرف میزنیم بعد بچهشش بازی میکرد در پلا یه سرخور تا می میدوی جیغ میزن یا موسی جفر بچه هم بگی مثلا متحیر مونده بودن اونا هم ته دلشونه ما مستین، اونا هم ته دلش یعنی اونا هم پناهی ندارن، میدونن خودشونن. حالا دیشب گفتم بهتون، حالا بندگان خدا رو امام زمان امتحانشون کرد، تو امتحانشون رفوذش شدن. من شما رو امتحان نکرده ان شاء الله امتحانم نکنه همینجوری بخره. معنی شما بیهوه امتحانمون میکنه سر از یه جاهایی در میاریم خیلی سخته، دستات. بساط خدا، بساط سختیه. الان جوونی تا جوونیت تا جوونید بچسبید خودتون رو تو دریای ماموسیت، مثل یعنی غرق شو تو دریای ماموسیت. والله هر چی میره جلوتر امتحانای سخت ابتلاعات ابتلائات سخت بعد شیتونم بلد کارشو. یعنی میاد سراغ تو، تو هر زمینه‌ای هر کی ادعا بکنه تو خدا همون زمینه زمینش میزنه. دکتر قلب سکته قلبی میکنه میمیره. دکتر مغز سکته مغزی میکنه میمیره. عالم دینی از همون علمش ضربه میخوره اون منی که ادعا میکنم نه من تو عالم فقط من امام حسین نمیشنستم امام من خریده امام حسین میگه تو فقط من میشناسی بسم الله یه امتحان سخت میگیره دیدیم تو هفتاد. همون طوری که امام حسین یهو تو سن پیری رسول ترک رو وقل میکنه میذاره تو عرش احلا یهو نوکری هم که خیلی ادعا کنه که من از بقیه بالاترم چون جمله مال امام حسینه دیگه دیشه هم خدمتون عرض که امام حسین فرمودن یه نفر رو پایین تر از خودت ببینی از ما نیستی ریشات هم سفید شد هر شب هم حسین امام حسین گریه کردی مدعی نشی من از این جوونه که حالا شاید ظاهر دینی نداره آبروم در خونه ما حسین بیشتره یوهو میبینی تو سن 70 سالگی دیدیم خیلی دیدیم اونا که مزرگترن دیدن دم حیعت رد میشه یوهو علمو میبینه حسین سنجان 70 سال نبودم دستمو بگیری یوهو دستشو میگیره میشه علیه گندابی که قصهشو شنیدی علی گندابی فاسد شهر بلندش میکنه کنه سید و شهده گجا قبرش کجاست بغل علامه هلی سید از سوال حسن اصفهانی آیت الله خویی اون طرف شخباس قومی بقل یکای در خونه امیر علی گندابی فاسد شهر میشونه شونه بقل یکای در خونه امیر این اینه ما از اون طرفش هم یهو دل یکیو بشکنی قصه ای که واسه تعریف کردم است که امام حسین تو عالم رویاد تو قتلگاه دستش میگیره برای والا این عالم گفتم واسه یهو میگه نه تو لیاقت نداشتی ادعا نکنیم هرچه هست آب رو اونه عزت اونه عشق اون آخه ببینید ببینید امیرالمؤمنین به امام موسی امام یا ابا عبدالله تو اشک شیعیان منی نگفت تو سبب اشکیا گفت تو خود اشکی یعنی اینایی که از چشمای شما میاد اینا وجود عبا عبدالله است. لذا روایت میگه ملائک میان پایین عشقا رو برمیدارن میبرن چون این اشکا نباید رو زمین بریزه حقیقت این عشق رو باید از امام صادق حقیقت این عشقا رو با خودشون میبرن چون مثل خونه گلوی علی نباید زمین بریزه چون امام باقر فرمود اگر میریخ زمین خدا بسات خلقت رو جمع میکن این روایت ر رو میان میبرن عشقاتونو اسماتونو مینویسن ملائک و خودشون رو متبرک میکنن به محیط که شما واسه سید و گریه کردید فرمودن همه ملائک اسماتونو مینویسن خب اقا یه ملائک بید اسم بنویسه بره دیگه معلومی چند در نفر بیست نفر سی نفر نشستیم بنویسه فرمودن نه ملائک با ز... اسمای شما ذکر میگن اون طرف اسمای گریه کنای امام حسین میشه ذکر ملائک واسه قربه الله ببین چه قیمتی میده با عبدالله جان عالم به قربان. بعد اینا رو به صورت دور نگهداری میکنن تا یوم القیامت یوم القیامتی که میگه بعد چه پیر میشه از عظمت قیامت خدا همه این خلق زمین و آسمان و مافیهاشو میگه خلق کوچک اما قیامتو میگه خلق عظیم چه خبر سحرای قیامت که یه لحظه توش موندنش کو از یه لحظه تو موندن اونجا پیغمبران خدا به پیغمبر ما استقاسه میکنند که آقا ما رو ببر ما که میدونیم بیریم تو بهشم و نمونیم اینجا تو اونجا تو اون لحظه عشقا رو میبرن محضر پیغمبران خدا میگن اینا عشقای گدی امام اماموسینه از نور زیاد اینا پیغمبران خدا میگن ما نمیدونیم اصلا نمیبینیم اینا رو. ببرید نزد خود حضرت رببال ارباب. میبرن پیش خدا و می خدا اهم میکنه ببرید پیش خود ارباب و صاحب این اشکا. عبا عبدالله. اشکای شما رو میبرن پیش سید و شهدام. یعنی اشکای گریه کنای توه به قیمت بذار. اون وقت ارباب اون امام حسین میفرماید که صاحبان این اشکار به خدا بگید یک دم تو قیامت نبونن. سری حرکت کن. همه گناهانشون رو ببخشید بر ذمه من حسین. بعد میفرمایند به خاطر این اشکا بهشون قرفه بدید بغل قرفه من تو بهشت. بغل خود من باشن یعنی امام حسین اینجوری میخرهتت که طاقت دوریتم نداره دیگه. شاکر این نعمت ها باشیم. با گناه نکردند، با دل امام زمان نشکندن با تاعت امام زمان انجام دادن با قد دونستن این جلسات با اکرام دوستان امیرالمؤمنین المومنین نگاهت به ما دوستان امیرالمؤمنین این باشه که خود امیر رو داری میبینی خود امام حسین رو داری میبینی اون دفعه بهتون تو همین جلسه ارز کردم چرا فرمودن هر جا پرچم باب و خوره. حرم ماست اینجا حرم سید و است. این پارچه ها و پارچه های امام حسین نمیکنه. کفش جوف کنه کفش حرم امام حسینه بسات چایی بسات چایی حرم امام حسینه و قس الاحازا این فرش فرشای حرم امام حسینه تو حرم امام حسینی شما زائر امام حسینید و فرمودن زائران ما از خودمان یه چیز بالاتر بگم هدیه امشبتون صدق سر از تو مولبنین سلام الله علیه پیغمبر فرمودن دوستاران حسین حسین من خیلی حرفه ها کسایی که امام حسین دوست دارن حسین منن اینو رسول الله فرمود نه ما قیمتی داشته باشیم و نه به خدا همش صدقه سر اربابمونه بمونه که تو عالم یه کاری کرده کن فیکون کرده حسین کجا بریم امشب یا ابا عبد بذار شروع کنی هم شب چهارم دیگه فردا شب آخر. بذم می‌خوام دل امام حسین رو به دست بیاریم امشب. امام حسین بخرد. کنیم دیگه. یا <تصفيق> <يا عبادلله. تصفيق> تو عالم میگن اگر عشق وجود داشته باشه، مستاق این عشق عشق بیبی زینب سلام الله علیه ها به سید و اگر مساغ کلمه ایشمش یا بابد الله عزیز دلم هرچی دوست دارم به خوننان من اون برمیرم که به شما حواله شده هرکی وزیفه شو انجام بده. دست روزه روزه جمع خوبه حالا هر جو سلاح دونست روایت میگه ببینید امیر المؤمنین ولی الله عظمه کون و مکان فید فی امیر المؤمنینه او حاکمه بر عرش الهیه او امیر المؤمنینه. اما امیرالمؤمنین با همه اون عظمتش یه زینتی دارد به نام زینب زینب زینت امیر المؤمنینه. جهان عالم خوربانش یه سری چیزا رو ما دستورم بر فهمش نیست گفتن اصلا کسی نباید بفهمه کسی نباید بفهمه یه مقامهایی هست یه آدم هستند، هستن جدای از معصومین یه عظمت هایی دارن که سر و لسرار یکیش این سلام الله علیه از. کسی تو عالم نمیتونه حامل ولایت باشه جز معصوم تو کربلا فرمودن عمه ما حضرت زینب سلام الله علیها حامل ولایت شد کی میخواد بفهم میرزای شیرازی تو حرم امیرالمومنین داره نماز میخونه ما که نمیفهمیم حرفا چیه میگیم که سید سرمون رفته باشه گفتن یه شاعری از ایران اومده میخواد چند خط شعر بخونه ایشون میفهمت بخونه تو اسناخوندنش میرزای شیرازی صاحب تحریم تم بگو قش میکنه آقا را به هوش میرن چی شد آقا؟ و دیشب این آقا رو دیدم همین شعر و خون آقا رسول الله عبار انداختن رو دوشش گفتن یه چیزی تو فهمیدی شعر چیه؟ سرخوش از صحبای آگاهی شدم دیگر اینجا زینباللهی شدم چی میفهمه؟ ما یه سیم میگیم اما آقا زینب ناموس علی بود <تص tonnes> گفت عب... گف پدر میخوام برم سر قبر مادرم گفت دخترم بذار شب بشه امیر دیه دیگه غیرت الله دیگه بذار شب بشه شب شد قنبر برو بر چی مشعل تو راه هست خاموش کن نمیخوام کسی سایه رو ببینه خود امیر المومنین جلو امام حسن سمت راست سید و سمت چپ قمر بنی هاشم با شمشیر به رهنه پشت سر این اسکورت زینبه ناموس علیه ناموس خدا تو کربلا اومدن وارد کربلا شدن امام حسین دستور داد همه از ها پشت و مرکز دایره همه دایره تشکیل بده بنی هاشم دایره دوم عباس بیا رکاب بگیر علی اکبر بیا آنان بگیر خود سید عدا چه خبره قرار اولیا مخدر زینب کبری سلام الله علیها تشریف بیارند کربلا اما یه کار به یه جایی رسید قروم آشورا زینب همه رو سواره بر محمل میکنه یه آن نگاه میکنه همه دور نامهرمه روم قتل گاهی ما با حسین حسین جان پناه آلمی ها پناه پناه <تصفيق> <تصفيق> بیت الزهراء سلام الله علیه. btzsir